اللهم اني اسألو که انتو سلی محمد و آل محمد و انتو في كل کل خیرن ادخلت فیه محمد و آل محمد و انتو خرجنی من كل سوء اخرشت منه محمد و آل محمد صلوات الله عليه و عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمان خانوم ها سلام شبتون بخیر اید مبارک تا عاد قبول گبارای وجودتون نماز اید فتر و الله همه شما زیر بارش باران رحمت و مغفرت الهی پاک و پاکیزه تر از پیش شده باشید که حتما این چنین هست ممنون که مهمان برنامه کلمه هستید امشب مهمان عزیزی داریم حضرت الله صفایه و شهری. مهمان برنامه کلمه هستند تا با ایشون گفتگو بکنیم درباره یکی از میتونم بگم راز آلودترین علمای معاصر ما اهل معنا، اهل عرفان و طریقت و سیر و سلوک مرحوم حضرت آیت الله خوش وقت رحمت الله علیه که حرفهای زیادی داریم بگیم انشالله اگر فرصت بشه و توفیق بشه که درباره ایشون صحبت بکنیم آی صحبایی خیلی خوش آمدین شب خیلی تا آتون قبول باشه بسم الله الرحمن الرحیم ابتداعا محضر مبارک عزت تعالی بینندگان بسیار عزیز و گرامی سلام عرض کنم عرض عدب به خیر دارم ایده آسمانی فطر به همگان تبریک گفته و امیدوارم انشاءالله خداوند مقدرات خیرش برای امت اسلامی مردم عزیز ایران انقلاب شکومند اسلامی ایران که اوجش ظهور حضرت بقیه الله عزم روی فداست تو روزه موجزت مقام معظم رهبری و سرط رازی این نظام تقدیر کرده باشه و با انشالله همه مون به انایات ویژه خداوندی باشیم شانم انشالله من چون حالا عنوان کتابی که شخدمتون خدمتون کردم درج نشد در برنامه ارز میکنم که از قسمتی از کتاب طریق بندگی بود که خدمتون قرارت کردم در واقع اشارات و بیانات مرحوم آیت الله عیز الله خوشوقت رحمت الله علی که البته بجز این کتاب کتاب های دیگری هم از ایشون منتشر شده که الان جزد و بکنید پیدا خواهید که خود بنده یه مدتی معنوز بودم با به خصوص بخش پرسش و پاسخ بعضی از این کتاب ها واقعا فوق العاده بود. خب آقای صفائی بوشهری آقای خوش وقت شاید خیلی ها نمی‌دونستان این شیخ آرام متبسم نورانی که در یک مسجد کوچکی در یک مکان نچندان پرتمتراقی در گوشه ای از شهر تهران در خوابان شریعتی داره نماز میخونه منبرهای ساده میره توصیه های معمولی میکنه ایشون کسیست که از دردانه های و معرفت و حکمت در دوران ماست حقیقتاً شاید بعضی از تعاویر رهبر معظم انقلاب در پیام تسلیتشون به قصد بود که به دفعه بعضی هارو متوجه کرد که ایداد بیداد یه شخصیت گرانقدری کوهی از معنا در گوشه ای از تهران بوده و چقدر خیلی ها از حضورش و وجودش به اطلاع یه خورده راجبه به طریق سلوکی و معنوی مرحومت الله خوشفقت برای ما بگید که از کجا شروع کردن چه اساتی دیده؟ بسم الله الرحمن الرحیم هزار مرتبه شویم دهان به مشک گلا هنوه از نام تو بردن کمال بیعده است. بزرگان طریق سلوک در مسلک سعود کمال انسانی انسان های آنی که زمینی باشند و مشهور در زمین و معروف در آسمان معروف و مشهورند تمامی این بزرگان این چنین بودند مرحوم آقای قاضی مرومای کشمیری مروم لاسن کلی همدانی مروم کربلایی و این یکی از لوازم این طریق است مرحوم از خان لا خوش نسل ششوم اورفون کامل و باسل بودند نسل اول مرحوم حسد علی بودند و مرحوم ملحسین قدی حمدانی بودند که این بزرگوار شاگردان زیادی تربیت کردند از جهود آقای مدکی سید مرتزا کشمیری مرحوم کربلایی، مرحوم آقای بحاری مرحوم هایری کربلایی ایشون هم شاگردان تربیت کردند نسل بعد شدند که شاگردان زیادی مثل مروم قاضی، مروم آقای اثار مروم آقا جمال تربیت کردند مرحوم آقای قاضی شایردان زیادی بر تروییت کردن مرحوم آقای بحجت مرحوم آقای علامه اینها مرحوم آمولی در تهران و نسل پنجم که اینها بودن نسل ششم حضرت وایت الله خوشوقت و چند نفر از همراهان ایشون در حلقه عرفانی مروم علم یعنی آقای خوشبخت شاگرد مرحوم علامه تبوتوابایی مرحوم علامه شاگرد مرحوم طب و مسلقه قاضی تبوتوابایی اسلوی قاضی تبوت شاگرد استاد عبدی کربلایی بله مرحوم کربلایی شاگرد مولا حسین قلی همدانی و برسه به سر سلسله که سید علی شوشتری الله علیه. و خود مرحوم آی شوشتری هم مستدل آقا متصل به عالم فرادنیا بودن یعنی واسطه دنیایی دیگه نبود و شخص جولای نام می‌برند در مصاحبه جولا بودن استفاده کردن بردن. که بردن. حتی از ایشون خیلی خبری از سربازان گمنام امام زمان یعنی دیگه از او تذکره و تاریخی نیست بعد بگیشون شخصیت فرادنیا بودند دنیایی نبودند معلومه خوشتری خودشون واسه دلغا نقل میکنه میگه وقتی که اون حادثه رخ داد من سنگ قبر ایشون رو دیدم یعنی ایشون از یک فضای دیگری جهت ام. هدایت ایشون و دستگیری ایشون به تحول در حوزه عرفان ماموریت داشتند لذا حضرت علی تالله خوشوقت میراثدار سلسله نور عرصه عرفان بودند و خودشون فرمودن من همه جا سر زدم پیش خیلی از بزرگان میرفتم، رفتم منازه می کردم. حتی از آید رو بخشوقت نه ما نجف رفتند و بنده گفتن ما در مسجد کوفه چهله می گرفتیم بدی همه جا رفتم وقتی که به علامه رسیدم دیدم ایشون جامعه جمی استفاده هست در همه امور سلوکی لذا رحل اقامت را اونجا گذاشتیم و محضر مبارک ایشون بود این این جمله رو آقای صفایی از نقل شده از زبان یکی دیگر از علما شاگردان محترم علامه یعنی این, این جمله رو منظور علام حسنزاده آمولی هم دارن از تایی طلا تحریری هم که تشوردم برنامه همین جمله رو راجع به علامه گفتن که انگار نقطه ای بود که انسان دیگه متوقف می شد دیگه افق اینقدر بلند بود که جایی بود که باید می شستند و می آموختند مرحوم علامه یک ظرفیتی در رو ایجاد شده بود که این ظرفیت تمامی مسائل عرفانی چه حوزه ارفان نظری چه عرفان عملی در این ظرف کاملا استقرار پیدا کرده بود و خود ایشون اضافه بر اون مظروفات ارفانی چه نظری چه عملی جای خالی داشت و اضافه می کرد به همین جهت بود که هر کس محضر و مبارکشون مشرف می هرکس هر کس به اندازه وعا وجودیش از این سرچشمه فیاض استفاده میکردن بله و مرحوم علامه بیشزانی که خود ایشون حرکت های نهایی کرده باشه جاذبه های آسمانی و عالم شهود ایشونو جذب کرده بود لذا این شعر رو میگفتند که تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت از سمک تا به سماعش کششی لیلی برد من به سر پنجهی خورشید نخود بردم را ذره‌ای بودم و مهر تو مرا بالا برد این مجذوب شدن ایشون در سلوک و جازبه های آسمانی و انایاتی که به ایشون می شد بودند طوری که مرومه خوشفخت می فرمودند که یک شب ماه مبارک رمضان خدمتشون مشرف شدم ایشون خیلی مهربان بودند در تعارفات ولی اون شب من سلام کردم فقط جواب دادند را رو باز گذاشتن که من برم در اتاق منزلشون بنشینم و ساعت‌ها گذاشتشون اصلا حرف رو من نزد و من سکوت میکردم و نکته که آیت الله خوشفق میگفتن میگفته هر وقت من محضر مبارکه اللهم میرسیدم سوال نمیکردم که اونو تو کوچه خودم ببرم میذاشتم ایشون تو شاراه خودش من رو ببره گفت چیزی نگفتن منم چیزی نگفتم خدافزی کردم ایشون تکریم کردن فردا که همدیگر دیدیم ایشون خیلی و خیلی خوش برخورد و صحبت کردن گفت ببخشید من دیشب با شما کم صحبت کردم به اندازه واجب صحبت من شبها در ماه مبارک رمضان روزی زبان میگیرم روزها ها مسائل مفترات شب من دهانم روزه هست. چنان ایشون اوج گرفته بود و رو که در توصیف ویژگی های ایشون فقط می خودش بیان کنه که دارای چه است و سکوت کرد و رفت. شاگرد بزرگوارش هم، از تو لحظش وقت همین راه رو رفتن و این سلوک که مردمای قاضی بود، آیا تو لحظش وقت، دکو بنده میگفتن آیا قاضی خرج نکرد، لذا دستش پر اون طرف، قلم برزه. بنده اسم بزرگی واری می‌گوید. خرج نکرد یعنی که اسرارش رو فاش نکرد. نکرد. و دستش پر اون طرف یعنی چی؟ نه اسرارش فاش نکرد. تصرفات تکویلی هم نکرد از قدرتش استفاده نیست به هیچ صورت دستش پره چرا؟ چون میتونه خیلی فعال باشه خیلی میتونه مؤثر باشه در همین شرایط آدم برزر چی کار میکنن مثلا وقتی فعالا من زیاده تربیت شاگرد دارن همچنین بعد از ده ها سال بعد از شد خیلی از دعا و اموراتی که مرتبط هست با فضاهای دنیا که اونها سلام می دعا کنند گاهی ترویه تم می کنند خدا رحمت کنه مرحومه خاصید حسن الهی تبات های برادر مرحومه علامه ایشون کاملا ارتباط داشتند و از آیت الله حسن زاده از بان الله تعالی. علیه از خواسته بود که به بگید بیگید هوایی ما هم داشته باشه آیه حسن زده کاری کرده بود در منزل مروم قاضی به حاج حسن آقا آیه حسن آقا گفته بود که ایشون به خانوادش رم نمیکنه ما کاری به ایشون نداریم اینو خود آقای حسن زده نقوم اما آی خوشوقت، علامم همینطور بودن، آی طلو خوشوقت همینطور همی بودن، به هیچ صورت خرج نمی کردند داشته ها و داده‌هاشون، و فقط زبان هدایت داشتند. البته موارد بسیار مختصری هم می شد که ایشون گاهی تجلیات در... تصرفات تاکینی خیلی با دقت خیلی با موازنه خیلی با به قدر استرار اقدام میکردند نمونه‌ای دارید برای مناقض کنید اجازه بفرمایید که باشه پیش خود ایشون شما بسیار خیلی متشکرم اجمالی عرض کنم نسبت به بی انقلاب ایشون فوق العاده فوق العاده به انقلاب ایمان داشتند و تا اون جایی که توان داشتند هم دعا می کردند هم برای حفظ و ارتقا و عظمت انقلاب یک سفر رفتن، حج برای همین نکته ایشون تشریف بردند و متوصل شدند و ایشون فوقلاده تو این امور کتون بودن اسم هر موقعی پانزی می الله اکبر ایشون هم این رو مراعات می‌کردن بعد می‌گفتن فلانی خیلی استفاده کرد الان اونجا دستش خالی قدرت تصرف نداره غذا از شخصیت است که کاملا در این عرصه حراست کردند و دقت کردند که ارائه نکنند و بیشترن برای فضایی که در اون فضا متناسب با این امور هست. همون سرواسته شما هم مهم مهمی درش نهفته مونده. اهلش رو نظرم دریافتن. خیلی متشکرم. یه بحثی کوتاهی رو ببینیم، واز گردی برای ادامه در بارون کامله الهی و اسلامی دوم پیاده کردن این از طریق مشقولی که جرایم پیدا کنه تبعات کرد اما اگر ماشین پیاده نکردن اونا بچرید اونا پیاده نمیکنن هیچ عثری نداری حکومت اسلامی در راست وجود که اونا چه فولاد و عادل باشن با ایمان عملی به اسلام با ایمان عملی به اسلام باشه اون چی اینجوری بشه دیدرسنا فوجا به خودش میشه شروع رایت میکنه به اگر مسئول پایبند به اسلام باشه دیگرانم از دیگر این یاد میگیره میشه انواس الان دین مولوچه انواس الان دین مولوشه. از ازدم انقلاب غیر از پیام تسلیتشون برای ارتحال آیت الله خوشفت در, در بیت مرحوم آیت الله خوشفت یه بیاناتی داشتن که چند جملهش شما من عرض بکنم نازره به فرمایش از آیت الله صفایی بوشهری است که برای اهلش واجد نکته مهم است. رحبرم از دم انقلاب در بخشی از بیاناتشون فرمدن که ایشان یک عمر طولانی و عمر طولانی با را گذراندند و همه اش را هم در راه خدا همه اش برای خدا زندگی پاکیزه نورانی از اول جوانی ایشان در همین راه توحید و راه معرفت و راه سلوک بودند تا آخر این عمر طولانی ایشان در این راه ظاهرا ای توقف نکردند و پیش رفتند خب خدای متعال هم انشاءالله عملش با ایشان عمل بندگان صالح خواهد بود عمل اولیاء خواهد بود الله گفت پس ازا برخود کنید خفتگان امیدواریم الله برکات آقای خوشوقت منقطع نشود از ماها از شما جوانها و برکات ایشان استمرار داشته باشد بعد از رها شدن از قید مادی و مادیت ارواه بندگان خوب خدا توانایی‌های بیشتری دارند دعا می‌کنند دستگیری می‌کنند هدایت می‌کنند رابطه را بتوانیم با اینها حفظ کنیم و نگه بداریم به نفعمان است بتوانیم رابطمون را با اینها حفظ کنیم منتفع بشویم از دعایشان از توجهاتشان از برکاتشان ان الله این دستوری که رهبر ما از زمان انقلاب درباره ارتباط با ارواح اهل معنو و عرفا می‌فرمان دستوری است که به طور ثابت من دیدم جز توصیه های از اهل ارفان هست که مثلا اینطور هست که زیارت مزارشون برید قراعت قرآن داشته باشید و هدیه کنید به روح اون بزرگوار به نیتشون صدقه بدید به نیتشون اعمال صالح انجام بدید اونها در اون دنیا دستشون بازه برای اینکه دستگیری کنن و هدایت کنن قلب صالحین طریق رو حالا چون حضرت آقا روی برنامه خوشروفت چنین تکیه موعکدی داشتند برد. امیدوارم که ان شاءالله که ایشون فرمان ما منتفع بشیم در اون مزار شانده. ساده اون سنگ قبر ساده‌ای که در برد. مسجد بالا سر سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی است ان شاءالله اگر مشرفم شدید امشب نمازهای آینده برد. به یاد همه باشید. خب ببخشید طولانی شد. هرویز بندش. یک چیزی رو یک شاه کلیدی شاه کلمه ای میشه گفت. برای اطلاع ایت داشتن که هر کی هر چه می‌فرستید گویا پاسخ ایشون معلوم بود. راه کجاست؟ تقوا. چه باید بکنیم؟ تقوا. نسخه بدید تقوا. یعنی اتکایی که بر اطلاع ایت الله مفهوم تقوا داشتند مهیرالغول بودین اینشون عجیب بود در تمام سوخ امرانی ها تمام بیانات نسخه ها آدست عمل ها روی این موضوع در واقع تأکید داشتند اتا گویا آن چیزی که ایشون از تقوا میفهمند و میخواد ما رو متوجهش بکنم فراتر از فهم عادی ماست ایشون به چه چیزی اشاره میکرده پایش میکنم من قبل از اونی که به این مبد سلوکی و تربیت حضرت حق خوش و ای بکنم یک نکته در رابطه با اصحاب این راه عرض کنم تمامی این حضراتی که اسم بردم از نسل اول ایاچدلی آقا تا مرحوم مولا قلی تا مرحوم های کربلایی مرحوم های قاضی مرحوم علامه حضرت حق خوش و ذاتوری تولا بهجت همه اینها در عرصه‌های مختلف معارف دینی دارای یک وزانت ای بودند معلوم اصالتی شوشتری با اینکه استاد عرفانه مرحوم شیخ بودند شیخ انساری ولی در حوزه مرجعیت و فقاهت وسیع ایشون مروم آقای حمدانیم همیت و مروم آقای احمد کربلاایم هم همیت و مروم آقای قاضیم همیت و مروم علامه هم همیت اینها در عرصه فقهت و مبانی فقهی و علوم پایه مثل اصول ادبیات، منطق تمامی رجال درایه اینها فوق العاده بودند و اگر اینها میخواستند و این مسیر را میخواستند متوقف کنند قطعا دارای شات و بالای فقی بودند. ناکنین این حضرات این کار را هم اهم می و هم برای اون امور افراد منبل کفای بود و از اون طرف سعود در مسلک سعود اون کار رو ما نمی دیدن برای خودشون و به رو این می دونستن. من خاطرم هست که باره ها ما به حضرت هایت الله خوشوقت گفتیم برای مرجعیت که ما اینکه به مرمای بحجت هم همینطور بود مرمای با دینی هم همینطور نمی پذیرفت حتی در سفری که مشهد محضر مبارک ایشون مشرف بودیم بنده نکاتی ارز کردم خدمتشون به نیازهایی هست ایشون در اصول ساب سبک بودن و یک سبک فوقلاده قوی داشتند که لازم هست بزرگان این عرصه این رو ملاحظه کنند ایشون در ادبیات فوقالعاده بودند در فقه متن. من خیلی ها رو دیدم ایشون بی بودند. اما تمامی این امور را و آثارش حسار این امور مثل مرجعیت مثل انوانهایی که در فضاهای مختلفت راهان میکنن اینها و اون جازبه ای که در اون اوج صعود هست و تربیت نفوسی که در این رابطه لازم میدونن اون را هم میدونن حضرت هایت الله و وقتی ها میگفتن برای مرجعیت همه چیزی هم آماده بود در قوم جون استنکاف میکردن و ارجام میدادن به مقام معظم رهبری گفتن آقا هستن کفایت میکنه نیازی نیست ایشون هست. در یک جلسه خود و بنده با ایشون صحبت میکردم و تو این زمینه با هم سخنی داشتیم ایشون وقتی من میگفتم در رابطه با خود ایشون من صحبت میکردن ایشون میگفت آقا میفرموید شما کلمه آقا تطبیق میکرد انحساری به مقام مؤذن ره من چیزی نمیگفتم ولی ایشون تمام این چیزها ارجاع میدادن میگفتن حضرت آقا من بلی کفایه هست از الان متعین ایشون در رابطه با نکته که فرمودید، دید بزا این افراد این چنینی هران کوز دانش درد توشه ای هستند که است بنشسته در گوشه ای. یه شخصیت هستند فوق العاده که اینها تا هستند قدرشون مجهوله. وقتی میرن مقداری معلوم میشه به علتهای مختلف. یا امن ام جئت تساله الاهو و رجل آر من الاری بروم سیده مرتزا یعنی شخصیتی بود مردم و علمای بغداد گفتن به ابو معلی ابو معلی معری گفتن برید اینو ببینید چیه گفت یا ساعلی امن جئت تساله از اون کسانی که من رفتم دیدم الو برجلون بر یک زر صفات رذیله در اونیست لو جه الناس فی رجل اگر شما بیرید ایشونو ببینید گویا تمام مردم خلاص شدن در وجود ایش از درفی ساعته این تمام زندگی قدمت توی یک ساعت با ایشون خلاصه میشه و این همچین شخصیتی اینها هستن مران آقای بهجت حضرت آقای تولا خوشبه در روبته با تقوا پایگی سلوکیشون چیز جدیدی در اصل نیست تمامی این سلسله اساس میگذارند بر انصر تقوا تقوایی که منبحثه از ایمان هست اما حضرت آیت الله وقت یک کار بزرگ در این سلوک کرد که منحسر به فرد هست اگر شما این سلسله پنجگانه اول رو ببینید تمامی این حضرات از ذکر شروع می‌کردند به تربیت ذکر قلبی ذکر زبانی و ذکر فعلی و از اونجا شروع میکردند به تربیت نفوس لذا کسانی که در حلقه درسی اونها حلقه معرفتی اونها بودند، همه اونها از اعلام بودن از بزرگان بودن تیه تریقی کرده بودن مشرف می شدن اما حضرت آیت الله خوش وقت یک پل آمد پایین تر و در متن جامعه در حوزه فعل کار شروع شروع نه حوزه ذکر همون چیزی که آغاز تکلیف انسان ها هست جوهره تکلیف هم تقوای به اساس ایمان لذا ایشون از همون ابتدا میدان را برای کار آورد و نفوس را به ویژه ها به خاطر ویژگی خاصی که یک جوان داره در این میدان گذاشت و با تقوا حرکت را ایجاد کرد برای نفوس مستعده برای مراحل بعدی که حوزه ذکر است و در انتها حوزه فکر تقوی یعنی مخالفت فرمان خدا نکردن پرهیز از مخالفت فرمان همیشه اون همین بود تقوی یعنی زندگی خدایی داشتن بدون گناه اما این تقوا یه ویژگی داشت در کلام ایشون اون تقوایی که منبعه از ایمان هست از خداست و برای خداست و شخص متقی در یک فضایی داره زندگی میکنه که خودشو در محضر خدا میدونه و در محضر خدا از خدا زندگی میگیره و برای خدا زندگی میکنه اون وقت این شخص میشه محبوب خدا الله، یحب المتقی میشه محبوب خدا و کسی که محبوب خدا شد دیگه محب خداست دیگه رابطه محب با محبوب یه رابطه فوق روابط عادیست محب تمام نگاهش به محبوبش است. تمام رضایتش از محبوبش است. هیچ بدی هیچ زشتی از محبوبش نمیبینه یه سخن به محبوبش نمیگه و همه خوبی در چهره محبوبش میبینه خونر انسان اینه که محب باشه خدا محبوب و خونرمندی انسان اون که کاری کنه که خودش محبوب بشه و خدا محبش و اون وقت خداوند به همچین شخصی چنان محبت میکنه که العاده هست محبوب خدا اهل تقوی است. اگه انسان اهل تقوی شد میشه محبوب خدا محبوب خدا اگر خواست این نکته خیلی مهمه که حضرت آید الله پشوک میکرد این محبوب خدا این شخص متقی اگر چیزی خواست مثل یه محب به محبوبش تقدیم میکنه خدا به او تقدیم میکنه یک نکته از کنم حدیثی از پیامبر صلی الله علیه, علیه و آله است اذا آبده الله ابدا من امتی اگر خداوند بنده از امت خودش محبوب قرار داد یک شخص محبوبش شد قذف فی قلوب عصفیه به سکان عرشی و ارواح ملاکته محبته این فردی که محبوب خدا شده خدا میگه به فرشتگان، به برگزیدگان، به سکنه ارش. محبوبم را دوست بدارید. محبوب شما هم قرار بگیره. یعنی محبوب خدا محبوب عالم وجود میشه. شخص متقی میشه محبوب عالم وجود. بعد ساعت مقدس رسول الله علیه آلاف و تحیید و سنامی فرمه زالکل محب این محبه. این کسی که این طور مورد لطف قرار میگیره و با محبت این محب خداوند این چنین محبت میکنه در تو با الله تو با الله تو با الله ولहू عند الله يوم القيامه الشفاعه این عبارت عبارات بسیار عجیبی است این لام لام تملیک است یعنی نزد خدا مقام شفاعت به ایشون تملید میشه یعنی مقام شفاعت پیدا میکنه در روز قیامت خودش که بهشتیست مقام شفاعت هم داره اهل تقواه میشن محبوب خدا این الله یهود بالمتقین به این آثار برش مترده هست لذا برای باز شدن طریق سلوک باید محبوب خدا شد مبغوظ که نباید بود عادی که نباید بود محبوب خدا شد محبوب خدا کیست؟ خداوند میگه نگه اینالله یای بول متقیم اهل هستن لذا ایشون از اون مرحله ذکری که در اون پنج نزل شروع می شد یک مرحله آورد پایین تر آمد توضیح فعل که بعد از فیل که این زیر ساخت ها هم آماده شد پایا آماده شد و ایمان بالا رفت تقوا بالا رفت اخلاق بالا رفت این بستر این زمین آماده شد اون وقت البلت طیب یخرج نباتو به ازن رب دیگه این ذکر که در این میدان کشت بشه درخت تن میشه و درخت توبای مکوشفات و رفع حجاب میشه. من آچا و یه بار خلاصه عرض کنم شما یه ای ایرادی خاطر تصی بفرمایید از ابتدای سخن نکته این بود که مرحوم علامه مجذوب بود. بله. و این یک کشش ملکوتي بود که ایشون رو راه می‌برد و رشد می‌داد. بله. به این طریق که ما با گام‌های خودمون و رأساً بر اساس اراده خودمون و اختیار خودمون نیست که بتونیم این راه به این دشواری رو این عبور بکنیم و طی بکنیم. نیاز از هست که از اون طرف کششی باشه که ما رو به سمت خود بکشم و فرمودید که این کشش زمان اتفاق میفته که انسان محبوب حضرت حق بشه و مقدمه محبوب حق شدن هم رعایت تقویه است بله تقوه هم خب مثلا امثال ما که مبتدی هستیم ممکنه بالاخره از ست تا حرام شاید پنجاتشو نشناسیم یا بهش توجه نکنیم گویا اینطور هست که ما بالاخره در حد توان باید اگر عمل بکنیم خداون گشایش ایجاد خواهد کرد برای اینکه ما به تعبیر اون آیه ارفان و حرمه پیدا بکنیم و حلال حرام رو بشناسیم آنچه که حرم خدا رو دسته کم بشناسیم فکر میکنم منظور مرحومت الله خوشوقت این بوده که این تقوایی هم که ما میگم تقوای اول صحبتم و تقوای آخر صحبتم یکی نیست من دارم از چند مرتبه تقواست رو میگم اساسا تقوا یک مفهوم مقوله به تشکیک هست داره یه مراتب هست رضا میفرمان اِنَّا اَكِرَمَكُمْ اِنَّا اَتْقَاكُمْ حیقه افل و استفاده میشه اون حالت محبوبیت اون حالتی که جازبه های عرشی میان این شخص رو مجذوب میکنن میبرن بالا و فضا رو براش فراهم میکنن اون مرتبه بالای تقوا هست تقواه عادی گاهی مواجه با خطای انسان میشه با گنای انسان میشه اون گناه نوعش فرق میکنه در تخریب شخصیت الهی انسان بیره از کدیره است که واقعا متفاوت هستند اما گناه قدرت تخریب فوق العاده ای داره در شخصیت انسان گاهی گناه چهل روز تمامی اعمال انسان را دوچاره حبوت میکنه، کنه غیبت به همین جهت هست که انسان اگر بخواد به مرحله متوسط تقوا برسه باید مراقبت کنه از این تقوایی که در ابتدا داره به همه به نحوی دارند فالغن خوف ها و تقوا بله مراعات میکنن نمازشون رو میخوان کسی میکنن. میکنن. خوب و من بله. میکنن تا اندازه ای اگر بخواد انسان به این در مسلک سلوک و در این مسعد حرکت بکنه قطعاً باید تقوای ابتدایی رو تبدیل کنه به تقوای مرتبه بالاتر تا اوج بگیره به مرحله عالی تقواه برسه اون وقت این شخص وقتی که اینالله یحب المتقین این المتقین یعنی شخصی که متلبس هست به ماده تقوا یعنی وقتی که اشاره بالبنان بشه که شخص متقی کیست او رو نشان بده ولی تا اون مرحله ابتدای اونم محبت الهی هست به اندازه همون درجه تقویه ولی اون حالتی که در این سلوک مورد نظره اون درجه حالی تقویه هست برخی سوال میکردن از حضرت ایشون که آقا ما تقویه مراحتی میکنیم ولی به جایی نمی‌رسیم. ایشون گفت یه جا لنگه یه جا شما مبتلا شدید تو این عرضه این نکته خیلی خاص از ایشون نقل کنم چون جنوبالی فرد مدید خیلی میگن ما تقوی رو مراقب میکنیم من خودم بزرگانی رو دیدم از ایشون هم سوال کردم که از آقا آقای اون شخصیت این تقاست اما شرایط سلوکی کشف کراماتی نداره سلوکی خاصی نداره ایشون گفت چون نمیخواد در سلوک در مسعد به اوج شففود خواستن هم موضوعیت داره چون گفت طلب موضوعیت داره تقوی باشه طلب کنه برخی از امور محب خداوند انایت میکنه به اون میده اما اون شخص نمیخواد اون فردی که شما میگید نمیخواد چطور میدان نیست اون ترگیر و حوضی فقاهته چون نمیخواد لذا اون آثار طلب برش. نکرده طلب نداره اون رو نداره بسیار عالی ولی منو بگم شاید ترین بحث نقطه بحث این بود که سلوک در این مسرهه ای که محال باشد کینگ هار بی حواله براید یعنی این که کسی خودش آقا من از فردا از شنبه میخوام دیگه قدم بر و رو و دیگه میخوام اهل سهی رو سلوک بشم و چنین کنم و چنان کنم این معلومه که دور خودش داره میچن خدا، دست ما نیست اگر زودی دیگه بخش رو ببینیم ببینیم اتاق فرمان چی آماده کرده برای ما بازگردیم برای بخش پایانی گفته وأنا القليل الذي كثرت والمستضعف الذي نصرت وأنا الطريق الذي آويت أنا أستحيك في الخلاق ولا مؤراقبك في الملاق شبهتم بخير برمی همشه کلمه منوره است و نورانیست به ذکر آیت الله خوشفقت رحمت الله علیه و در محضر آیت الله صفایی بوشهری استیم از شاگردان مرحوم استاد خوشفقت آیت الله خوشفقت که باشون گفتگو میکنیم هم میتونیم آیت صفایی ادامه میدیم بحثایی در واقع مثلک نظری ایشون رو در سیر و سلوک هم اینکه بریم سراغ سیره ایشون یعنی ما از شما بشنویم که ایشون در رفتار شخصیشون در عبادات شخصیشون در زیارت و توسلشون چطور آدمی بودن چطور دیده می‌شدن این شاید حالا برای ما جوان‌ترها جذابم باشه که بدونیم آقای خوشوقت مثلا حجشون چطور بود زیارت حضرت رضای سلام در مشهدشون به چه ترتیبی مشرف می شدن چطور عبادات شخصیشون به چه ترتیبی بود خوابشون نماز شبشون بعد رضوان خدا بر انسان بزرگ ایشون به مرحله رسیده بودند که در اوج طریقت سلوکی بودند هم اهل ذکر بودند در اعلا مرتبه و هم حوزه فکر و سکوت فوبولوزی داشته ایشون در این حضور قائب بودند، و در این غیاب حضور داشتن در این سکوت ذاکر بودند، و در این ذکر ساکت بودند. به ختم سلواتی که ایشون می ایشون در این سکوت فوقلاده ذکر می گفتند. اما ذکری که با قلبشون مراوده داشت ایشون فوق‌العاده کم صحبت بودن. ما تعبیر اون بودی که ازات آقا مثل فعل لازمه که باید به حرف جر متعدی بشه باید چیزی بیش گفت و بگه و ایشون فوق‌العاده اشراف به مسائل علمی داشته. چیزی از ایشون سوال نمی‌شد که ایشون بگه اجازه بدید مطالعه کنم سریع جواب می‌دادند یک روزی محضر و مبارکشون قرار داشتیم و ایشون به جایی بریم و هم فرموده بودن ایشون که شما روی قرآن کار کنید بند به یه آیهی رسیده بودم. تمام ترجمه ها تمام تفاسیر دیده بودم. واقعا از پس کار بر نیامده بودن محضر مبارد که ایشون رسیدیم رفتیم اون مکان عرض کردم حضرت آقا این آیه ایشون نیم ساعت صحبتی کردند چنان این آیه رو ترجمه کردن تفسیر کردن شأن نزول گفتن که گویا در عین زمان نزول آیه حضور داشتن و از شخص صاحب غی رسول خدا سوال کردند ایشون در علمیت فوق لحده ادا از ایشون سوال که جواب می‌دادن گاهن وقتی که ایشون لازم میدیدند، اون نکات را شخصا بیان می‌کردند در نماز فوق لحده ایشون مرتبط میشدن رو به جلو بودند رو به خدا بودند بغل دست رو پوشت نستن ملازنه نمی نمیدیدن در زیارت ایشون تا خودشون بیان کرده بودن تا جواب سلام نشندم حرکت دست روی زری نمیکنم وقتی که اجازه دادن میرم زیارت میکنم خیلی کوتاه هم زیارت میکردن همون موقعی که این حالت روح میداد و برمیگشتن تا قبل از اون حضرته خیلی عادی بوده. رضا گای حرم مشرف می شدن حرم ایمام رضا. علیه السلام می شستن زیگ مردم سلام علیک می گای پاشون در بود پاشون دراز می ما ای عبایی رو پاشون اینداختیم. به وقت اون حالت رخ میداد حرکت می کردن. دیگه شرایط خاصی بود. مشرف می شدن. شرایط ویژه درک می کردن. کس می کردن. نائل می شدن. برمیگشتن. بعدی برمیگشتن همون حال... انسان قبل از اون حالت بود و ایشون اشراف به حوزه حیات خودشون داشته دادا قبل از اونی که سفر آخر به عمر مشرف بشند به برخی ها گفته بودن که دیگه زمان حمل رسیده و حمل بگذاریم زمین. و روز آخری که پنجشنبه آخری که من مشرف شدم خدمتشون رفتن حج ایشون نگاه آیست به همه حضرات داشت که گوید دیگه دیدارهای آخرین هست شخصیت ای که انسان در کنارش احساس میکرده آرامش پیدا میکنه روشن هست و با معرفت میشه و در فراغش و در نبودش انسان احساس میکنه بسیاری کمبود برای خودش ملاحظه میکنه و همین جهت از ایشون منشه کمالات و براکات فراوانی برای نفوس مستعده بودن یه رابطه زاهرند صمیمانه و اون خاصی هم با راهبر ما انقلاب داشتند، همراهی خوش. بله. یعنی انگار یه بگن اسامه سرگی خلوت‌های ظاهراً دو روزه با هم داشتند. بله. یکی از کارهای بزرگی که از آیت الله خوشوخت داشتند ورود عرفان در حوزه سیاست بود به عنوان عرفان سیاسی که سیاست حکمرانی دینی، حکومت دینی تجلیه قدرت الهی میدونستند و اگر نظام اسلامی بر وزان تقبا پایه و ایمان اساس باشه و در تعریف ادالت و تحقق اندیشه های اسلامی باشه و در مقابل جهان و کفت بخواد بیسته این حکمرانی و سلطنت الهی می‌دونستند به همین خاطر نسبت به امام عظیموشان از علاقمانی که استادش بودند عمروم آیت‌الله عظما بروجردی خیلی تکریم می‌کردند از این بخش هم حقوق امام را مورد تعظیم قرار میدادند. به ضمن گفتن که واسطه فیض قدرت الهی است نسبت به مقام معظم رحبری هم همینطور قبل از آنی که حضرت آقا به رهبریت ما توفیق پیدا کنیم و حضرت آقا این سعادت برای ما ایجاد بشه ایشون کلمه آقا به کار برای مقام معظم رحبری میبود و ایشو تأکید به ما میکردن تکریمشون، تنظیمشون، دعایشون برای حضرت آقا بسیار بود، مرابدات نشست بود، ولی خب بعد از شرایط خاصی که ارتباط خاصی پیدا شد با خانواده حضرت آقا، این بیشتر شد و فوقولات تأکید می‌کردند روی ولایت مداری و رهبریت به اطاعت از حضرت آقا. یک روزی من محضر و مبارکشون خوش بودم به گمانم و کمتر از یک تریضا فرسندش بکنه حضرت آقا یک شش ماهی بود رهبر این الشان و توفیق بر ما پیدا شده بود رهبری حضرت آقا من خدمت ایشون بودم جای رفتیم خدمتشون گفتم که آقا مقام معظم رهبری دارای شرایط ویژه ای هستند. حالا تعبیر خاص داریم خاصی بود. ایشون فرمودن وقتی خداوند کسی بخواد مقامی به او بده، بلایت به او بده، تمام لوازم بلایت هم به او میده. به ایشون این طور هست، هم بلایت از خداست. و هم تمام شرایط به ایشون عنایت شده این کلامی حضرت امام رحمت الله خیلی المنون از تویتو زحمت کشیدید بو شهر هم داشه آوردید واسه زحمت شد حلال کنید ما سپاسگزارم از شما از بینندگان عزیز هم سپاسگزارم تشکرم